یه اقیدی هست که بعضی میگن خوردن غذا آب یا شجادن حالا اینجا خوبی این است در هندوستان اقیدی بیشتر از این بود اونجا جامعی بابتن چیز نہو هم نا چرا انسان جنوبه داره اوض جدا میکنه، کنه در دفترش می اندر زیرون اون از در بیرون این درست درست نیستیم غاید جایلی هم به حال خوردن و خابیدن اشکالی نا داره Allah زی فراتر هم میگم. علکسی کسی یک بار وا اهل بیت نزدیکی کرد بعد قضا حاجت نفسی شد ارزشا نفس صورت گری ای یک شب درو برای مرحله بعدی هم نزدیکی بکنه بدون که این قوا صورت بگیره نه این هم جایز است همه این ها جایز است خوردن، نوشیدن، خابیدن، نزیک کردن در حال جناب اشکالی ندارن فقط قرآن درست نیست قرآن درست نیست که چون که وحی است به انسان پاک مونو بخونن هم در غیر سوی روایت زیادی هستم نبی کریم در حال جناب این هر انجام میدن مشکل در اگر اینطور باشه از این بدتر خانوم که داری محضور میشه ماهانه، بعضی ده روز محضور میشن جانابات با مازوره هم هر کسشوند یکی، ونچ کار کنی، تا دارو نخور نخرمی میره. اگر تا بچه بچو بچه از گروس نگی می میره،, می میره. ونچ کار کنی. از دوام گذاشته بالاتر، کسی با وظیمی که زایمان میشه، پاچهای روز نپاکه، اینه جنابتی. الله ونچ کار کنی. بچه تازه متولد شد دربی میره گروس نگی، بلکه درستی با عقل جد دربی نه. این خلاف احادیثندو خلاف اجداد اسلامی. همی اونها درستن خوردن نوشیدن، خوابیدن همی کار درستن حتی از این فراتر بریم از عایشه رضی اللہ تعالی انها معذور بودن نبی کندر در و نبی اعتقاف کرده بودن سر وار نبی کریم شانه می کرد سر نبی کریم این اگر انسان مذیور جنوب هست این هم بگم کسی که جنوب بود یا مذیور بود یا خانوی حالت آت ماهیان بود یا ما حالت امو زائمان بود باید اندار در بی میکنه؟ اراغ نجیس ای نجیس نیست در این اراغ نجیس نیست خانوی اراغ نسل کنید بعد آب یاره تو نجس ایون خلافه ایک صحابی پیش نبی سلام کرد دست کشیر سلام نداد این دست نمیده ای ایسا محظورم جنوبا فاید ایسا دست جنوبا دست کن یه چیز معنوی هست. یه زندگی اشکالی ندارن. هست عایشه حالت مزدوریت قضا می کنه، نبی از محل قضا و قضا می در حالت مزدور عام می کنه، محل دهن عایشه آب شو می کنه. این همشون جایزند و عقد باطله. جای شریعه گفته انجام بس داره سخته میکنن نه نه نه. من نمی کنیم. جای شریعه میگه این کارو ما کند دارن بازو می